به نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان دلارام و شاهزاده روایت‌های بسیاری از این افسانه در دست است که هر کدام به صورتی بیان شده است طرح کلی افسانه در همه روایت‌ها یکی است یعنی عاشق شدن شاهزاده به عکس دلارام و به دنبال او رفتن اما در بین راه حوادثی رخ می‌دهد که در های مختلف این حوادث با هم فرق دارد. از مشترکات این روایات یکی هم مخفی نگه داشتن تصویر دختر قصه است در اتاق هفتم یا اتاق چهلم. قهرمان قصه با ترفندی این منع را زیر پا می‌گذارد و از آن به بعد سرگردانی و تلاش‌هایش برای رسیدن به محبوب آغاز می شود شما رو به شنیدن داستان دعوت می‌کنم. پادشاهی یه پسر داشت. یه روزی که پسر بزرگ شده بود، پادشاه پسر رو خواست و کلید اتاق‌های قصر شاهی رو بهش داد. پسر به اتاقها یکی یکی سر زد، دید که همشون پر از اشیای قیمتی و جواهرات هستند تا اینکه رسید به اتاقی که دید کلیدش نداره. از پدرش پرسید کلید این اتاق کجاست؟ پادشاه گفت کلید این اتاق به درد تو نمیخوره. اون روز گذشت تا روزی که پادشاه به حمام رفت. پسر اومد و کلید اون اتاق رو از جیب پدرش در آورد و رفت در اتاق و باز کرد دید هیچی تو اتاق نیست موقع بیرون اومدن چشمش به بالای در و به عکس یک دختری افتاد که انقدر زیبا بود انگار به ماه میگفت تو در نیا من در اومدم پسر یک دل نسعد دل عاشق شد و از هوش رفت پادشاه که از همون بیرون اومد، دست برد تو جیبش، دید کلید اون اتاق نیست. آه از درونش بلند شد. با عجله اومد به قصر و در جستجوی پسر بر اومد. هیچ کس از پسر خبری نداشت. پادشاه رفت توی اتاق دید که ای وای پسر بیهوش افتاده به هوش آوردنش. پسر گفت پدر این عکس چه کسیه من میخوامش؟ هرش پدر و نصیحت کرد سودی نداشت آقابت پدر گفت که این عکس دختر پادشاه چین و ماچینه و اسمشم دلارامه و تو نمیتونی بهش دست پیدا بکنی راه مملکتشون خیلی دوره پسر گوش نکرد اسباب و لوازم سفر رو آماده کرد پسر وزیر هم بهش گفت که منم باهات میام بعد دوتا عصب از تو تاویله بیرون آوردن و خورجین های دوتا اسب و پر از جواهرات گرون قیمت کردن و پشت به شهر و رو به سمت شهر چین و ماچین به راه افتادن. رفتند و رفتند تا به شهری رسیدن. توی کاروان سرایی اقامت کردند. بعد برای تماشای شهر راه افتادن. شنیدن که در شهر نجاری هست که چرخ و فلک میسازه. اگه سوار اون چرخ و فلک بشی و به راست بچرخونی میره بالا و اگه به چپ بچرخونی میاد پایین. رفتن پیش نجار و دستور دادن که یک چرخ و فلک برشون بسازه. چرخ و فلک حاضر شد سوارش شدن و به راست چرخوندند و به هوا بلند شدن و راه چین و ماچین رو در پیش گرفتن رفتند تا رسیدن به شهر دلارام پشت شهر پایین اومدن خرجین جواهرات رو برداشتند و وارد شهر شدن توی کاروانسرایی اقامت کردند. مقداری از اون جواهرات رو به کاروان دار دادن و در جستجوی دلارام برآمدند کاروان سرادار گفت آفتاب و محتابم روی دلارامو ندیده شما چطور می‌خاین اونو ببینین این کار محاله باز هم جواهراتی به اون کاروان سرادار دادن کاروان سرادار گفت من پیرزنی رو میشناسم که با دلارام رفت و آمد داره اونو میبینم بلکه بتونه کاری براتون بکنه اون وقت رفت و پیرزن رو آورد پسر پادشاه پول زیادی به پیرزن داد تا اونو راضی کردند و رفتن خونه پیرزن اقامت کردند. ولی تا از دلارام حرف میزدن، پیرزن می گفت حرف نزنی دیوارا سوراخ داره، سوراخام موش داره، موشام گوش داره، میرن به دلارام خبر میدن. اونقدر پول به پیرزن دادن تا راضی شد که راهی پیش پاشون بذاره. پیرزن گفت، توی این شهر روزای جمعه باید همه بازارها باز باشه و همه مردم برن خونه شهر رو خلوت کنن. اون وقت دلارام میاد به بازار رو گردشی میکنه و هرچه دلش خاص ور میداره و بعدم از طرف دربار میان پول اون وسایل رو به صاحبای اون دکانا میدن. حالا که تو انقدر بیتابی میکنی برای جمعه آینده توی یک صندوقی تو رو میذارم توی دکان تا فقط یک نظر دلارام رو ببینی بعد روز پنجشنبه که شد یه صندوق تهیه کردن و یه سوراخ توش گذاشتن شاهزاده داخل صندوق رفت پسر وزیر صندوق رو به دوش گرفت و راه افتادند تا به در دکان شخصی که با اون آشنا بود رسیدن پیر زن به صاحب دکان گفت این صندوق اینجا باشه تا بعد من بیام ببرمش. صبح جمعه که شد دکاندارها دکاناشون رو باز کردن و منتظر دلارام شدن. شاهزاده از سوراخ صندوق دید که دلارام با یه دست کنیزاش وارد بازار شد. دختری دید مثل ماه شب چهارده زیبا. باز تا و از هوش رفت. دل آرام گردش تو بازار کرد و رفت. مردمم سر کارشون اومدن. پسر وزیرم اومد، صندوق رو برد، در صندوق که باز کرد، دید شاهزاده بیهوش افتاده. اونو به هوش آورد و با هم صحبت کردند که چیکار کنن تا به قصر پادشاه بتونن وارد بشن. آقا بعد گفتن خوبه که نوازنده بشیم. همین کارم کردن. پیرزنم مدام پیش دلارام از نوازنده های تازهی که به شهر اومده بودن تعریف میکرد. سرانجام دلارام دستور داد تا اون نوازنده ها رو به قصر بیارن تا در اتاق دیگری نوازندگی کنن و دلارام تو این یکی اتاق بهشون گوش بده. پیرزن اونا رو به قصر آورد. شاهزاده و پسر وزیرم تا غروب زدند و خوندند. شب که خواستن برن دلارام دستور داد فردا هم بیان. موقعی که از قصر خواستن خارج بشن پسر پادشاه داخل صندوقی که جای ساز و تنبک بود رفت و پسر وزیر صندوق به دوش گرفت و برگشت گفت حالا که باد فردا هم بیایم، اجازه بدیدین صندوق رو بذاریم اینجا باشه. کنیزو هم قبول کردن. پسر وزیر صندوق رو گذاشت و رفت. شب که شد دلارام شامشو خورد و خوابید همه که خوابیدن و به خواب سنگین رفتن شاهزاده از صندوق بیرون آمد و وارد اتاق دلارام شد شمدون طلا رو که بالای سرش بود گذاش پایین پای دلارام و شمدون نقره رو که پایین پاش بود گذاشت بالای سرش و رفت تو صندوق وقتی که دلارام بیدار شد دید که جایی شمدونا عوض شده. فهمیدی کسی وارد قصد شده. ولی هرچی که جستجو کرد هیچی نفهمید. صبح پسر وزیر اومد و شاهزادم از صندوق خارج شد و باز مشغول نوازندگی شدن. شب باز دلارام دستور داد فردام بیان. پسر وزیر بازم مثل شب قبل شاهزاده رو گذاشت تو صندوق و خودش رفت. شب که شد دوباره شاهزاده از صندوق بیرون اومد و جای شمدونا رو با هم عوض کرد و رفت تو صندوق. صبح دلارام پا شد. با که جای شمدونا عوض شده اما به روی خودش نیاورد. اون روزم شاهزاده و پسر وزیر تا شب زدن و خونده. شب که شد دلارام دستور داد فردا هم بیاین. پسر وزیر به همون روش شبای قبل شاهزاده رو تو صندوق گذاشت و یه خوراک مختصریم پهلوش گذاشت و از قصر خارج شد. موقع خواب که شد دلارام انگشتشو برید روش نمک زد تا از سوزش اون خوابش نبره. یه بخشی از شب که گذشت دید یک جوونی وارد اتاقش شد. دلارام مچشو گرفت. تیت جوون بسیار زیبا و برازنده است. دلارام یک دل نصد دل عاشقش شد. پرسی تو کی هستی و از کجا اومدی؟ پسر همه سرگذشتش رو گفت. دلارامم اونو تو قصر خودش پنهان کرد. شبا قصر رو خلوت میکرد و در کنار شاهزاده می و با هم صحبت میکردند. چند روزی گذشت یه شبیه شاهزاده به دلارام گفت باید تو رو از پدرت خاستگاری کنم. دلارام گفت پدرم قبول نمیکنه باید از اینجا فرار کنیم. اون وقت شبیه رو برای فرار مشخص کردم. اصر اون روز دلارام گفت: دیگه فردا لازم نیست بیاین. پسر وزیر و شاهزاده از غرض خارج شدن و وسیله سفر رو فراهم کرد. سه تا عصب توند رو تهیه کردن و کنار قصر به انتظار ایست دادن. شب از نیمه گذشته بود که دلارام از قصب بیرون آمد و به اون دو نفر پیوست. اون وقت سوار اسب شدن و پشت به شهر و به بیابان تا صبح راه رفتن. دمدمای صبح خسته و درمونده از اسب پیاده شدن. پسر وزیر کناری خوابید. دلارام گفت من کشیک میکشم. شاهزاده هم دراز کشید و خوابید. چند ساعتی گذشت دلارام دید که از دور گرد و غباری می فهمید که پدرش به تعقیبش فرستاده. دلش نیومد پسر رو بیدار کنه. از طرفی هم میدید که اگه اون دو جوان خواب باشن و لشگریان پدرش برسن مرگ پسر رو حتمیه. گریش گرفت قطره از اشکش افتاد رو صورت شاهزاده شاهزاده از خواب پرید و پرسید چرا گریه می کنی؟ دختر گفت پشت سرتو نگاه کن شاهزاده نگاه کرد دید گرد و غباره فهمید که تغییبشون کردن سری پسر وزیر رو بیدار کرد و خودشون رو آماده جنگ کردن طولی نکشید که سوارا رسیدن و هر دو طرف آماده جنگ شدن که در آسمون ابری مثل دود بالای سر خودشون دیدن. لحظه نگزش که یک دستی از بین اون ابر دود مانند بیرون اومد و دلارامو گرفت و به آسمون برد. شاهزاده و پسر وزیر و اون سربازها مدتی به همدیگه نگاه کردن و خیلی معیوس و افسرده شدن. شاه ساده رو به سوارای پادشاه کرد و گفت برگردید و اونچه که خودتون دیدین رو بریم به پادشاه بگید ما هم برای نجات دلارام میریم. اون وقت راه افتادند پسر وزیر فکری کرد و گفت این دست دیوی بود که دلرام برد تا شب اسب تاختند و تاختند تا رسیدن به کوهستانی و پیاده شدند توی اون کوهستان به جستجو پرداختن مدتی توی اون کوه گشتن تا به یک قاری رسیدن مثل اینکه که یه نفر به اونها گفت که گم شده شما تو همین قاره نزدیک قار کمین کردن از اجاب روزگار اون که دیف دلارام رو به همین قار آورده بود و اونو ساقی کرده بود حالا هم مشغول میگوساری بودن از اون طرف دل آرام تو غار بود که دلش گرفت و بی اختیار به یه بخونه از غار اومد بیرون. ناگهان چشمش به پسر وزیر و شاهزاده افتاد. فهمید که شاهزاده با وفا همه جا به دنبالش گشته تا به در غار رسیده و بهشون نزدیک شد و آهسته گفت که دیوها دوازده نفرن. شما سب کنید تا من خبرتون کنم. دلارام برگشت و توی شراب دیوها داروی بیهوشی ریخت و بهشون داد. همه خوردند و بیهوش شدند. اون وقت دلارام بیرون اومد و گفت داخل بیاین. اونها خنجراشون رو کشیدن و داخل قار رفتن و بی این که فرصتی بدن سر همه دیوارو بریدن. دلارام از شجاعت و دلاوری و وفای شاهزاده خیلی خوشش اومد. شب و تو همونجا موندن و روز به راه افتادن. چندین ما راه رفتن تا اینکه عاقبت به شهر خودشون رسیدن. پسر وزیر جلوتر اومد و مجره اومدن شاهزاده را به پادشاه داد. همه بزرگها به استقبال رفتن و شاهزاده و دلارام رو با عزت و احترام به شهر وارد کرد. هفت شبانه روز شهر و آیین بستن و ساز و آواز نباختن و بعد دلارام رو برای شاهزاده عقد کردند و شاهزاده و دلارام عروسی کردن. پادشاه هم از سلطنت کنارگیری کرد و تاج پادشاهی را بر سر پسرش گذاشت. پسر وزیر هم به جای پدرش که وزیر بود وزیر جدید شد. به پدر دلارام هم نامه ای نوشتن و پیشامت ها رو بهش خبر دادند و نامه رو با هدیه های فراوان روانه شهر چین و ماچین کردند دلارام و شاهزاده عروسک سنگ صبور، جلد سوم، قصه های ایرانی، صفحه هشتاد گردآوری و تعلیف سید ابوالقاسم انجوی شیرازی انتشارات امیر امیرکبیر چاپ اول 1354 شنوندگان عزیزم امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و ازتون متشکرم که همه این داستان ها رو با من همراه بودین و این آخرین داستان رو هم از من شنیدید همه شما رو به خدای مهربون می سپرم. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهر را کنیم؟ جایی که پری ها و کتوله ها زندگی می کانال هزار افزان همونی که دنبالشین، همونی که دنباله جایی که داستان‌های افسانه‌ای و اسطورهی سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه. کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا سفری